بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دهمين ذكر ورد صبقه وشمقه سيد الاستغفار عن شداد بن أوسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول رصو سيد الاستغفار يعني بحث الشأن منزلته ان ذكره بذكترين استغفار بذكترين ورد استغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. بره ورد جاره تؤفر يد جاره ماني. هيچ معبدی هيچ کس یعنی جوستو مستحق پرستش وعبادات نیست. خلاق تاني وانا عبدك. گفتی زنم می بیاد وانا آماتک. خلاق تاني وانا عبدک وانا علی عهد که ووعد کم استطاعت. گفتی معهد وعده گفتی بلا وعده اون لازمی شهادتین مای ما شهادت دادیم. ك الله تعادبك لي الله معبد موس بعد متيع. باش خب قفتي ربت شد في سورة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين خوب إذا قال إياه كن عبد و قال هذا بيني وبين عبدي يعني هذا عهد بيني وبين عبدي إياه كن عبد و يعني ترى فقد, فقد عهده یعنی نباید از غیر از الله استعانات بجویم، کمک بجویم. و نباید هیچ کس جز الله بپرسیم. این عهده، این عهده که بین ما و الله بین ما و الله. شما فکر نکنید این استعانات جسد فقط مرده هستا، یعنی که ما اجازه نداریم از مرده استعانت بجویم. استعانت از زنده در کاری هم که نمیتونه هم شرکه. مثل ساحره و جادوگر چرا رسول صلی اللہ می فرماید من اتکاهنن و عرافن فقط کفر و اون زلم محمد چون داری استعانت از کسی می جویی که اجازه استعانت جستن از او نداری اون کسی که با جنیان در رابطه هست بس این استعانت جستن فقط خاص مرده و بط و اون هایی که مشرکی می نیست شاید فرد باشه که زنده هست شاید اون بط باشه شاید اون مرده هست که زی هر, هر کسی که تعزيم بشه وعطاعت بشه بغير از الله جل شأنه وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم نصف أول إياك نعبد وإياك نسعي نصف دوم اهدنا الصراط المستقيم كم هذا بيني وبين عبدي والعبدي ما سأل والعبدي ما سأل النصف بعد اللهم يقول وبروية بندام ان چيزك ازمن بخواهد يعني هرچه بخواهد بهش ميدر مقابل كي جي بس ما تعبال یاک انا عبد ویاک انا ایفا بکنه منم به وعدم ایفا میکنم ای که داده اگر به عهدت ای بنده ایفا کردی ای عهدت عهد چیه یاک انا عبد ویاک انا السعین وعد چیه هدنا الصراط المستقیم یعنی من ای بنده اگر تو به عهدت ایفا کردی به این وعده که تو را هدایت بکنم به صراط المستقیم و تو را به بهشت برسونم در بر پر صراط من بر وعدم هستم و خواهم بود این پاداش الله قلت أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع در مقابل هر بدي كي الله أنجم دادم بيتو فناهمي ورام أبو لك بنعمتك علي هر نعمتك تبار من داري من اقرار میکنم من اقرار دارم هر نعمتك دارم از خودت فقط از پدر و مادر از شكل قيافه از جان و تنسالم هر چي داريم قلت ما بكم من نعمت فمن الله اقرار النعمت خیلی مهمه نه کفران ما شانس ما شده ایرانی بودن شانس ما شده این بدبختی خاری درسته؟ این کفران چیه؟ کفران نعمت نه ذکر نعمت به جای که تو بیای نعمت خدا را بر خودت ببینی نقمت را بر خودت میبینی هرچی هست از سر های هر هرچی هست از نمیدونم فلانه خود و خار و زلیل میبینی نعمت الله را بر چش نمیاری اینجا داره چی به همون یاد میده د اقرار نعمت اقرار اون نعمت های الله بزرگی که بر ما ارزانی داشته و ابو بذنبی فاغفر لی الله آدم و را بخشید ولی ابریس را نبخشید علت چیه تواضع؟ علت اقرار اقرار به گناه چرا علما گفتن چرا علما گفتن که شأن بدعت از گناه بدتره چرا گفتن که اهل بدعت وارد حوض رسول الله نمیشن ولی اهل گناه شاید وارد حوزه رسول بشه چرا چون اون کسی که گناه میکنه زنا میکنه اون کسی که دزدی میکنه اقرار داره که گناه داره میکنه ولی اون کسی که بدعت میاره هیچ وقت هیچ وقت نمیپذیره که کارش اشتباهه میگه نه کار من درسته تو اشتباهی تو نمیفهمی کار من درسته تو نمیفهمی هیچ وقتم توبه نمیکنه عزت به اسم داره به گناه داره بالاسم احساس عزت میکنه در مقابل اون گناهی که داره انجام میده مثل شخصی در زمان تابیعی که با صحابه نشسته بود و بزرگترین تابیعی ها بود که با اصحاب و یاران نشسته بود سعید بن مسیب در مسجد نشسته بود شخصی اومد بعد از نماز صبح نماز خون دو کرد. نماز خون دو کرد. نماز خون دو کرد. گفت که بیا چقدر نماز میخونی چرا اینقدر نماز میخونی رو کرد گفت که مگر نماز بده گفت که نماز بد نیست ولی اینجاش بده رسول الله صلی الله علیه و نهی کرده بعد از نماز صبح نمازی خانده بشه نماز بد نیست ولی اینجا جاش ذک گفتن خوبه درسته رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز 33 بار ذک میگفتن کسی بیاد بگه رسول الله 33 بار من میگم 50 بار شما بعد از نماز بگید 50 بار اضافه بر اون چیزی که رسول چقد شخص اشتباه بکنه 33 و 34 35 اشتباه بکنه ولی نه از عمد بگه نه رسول گفت سی سی سی سی من میگم سی و پنج. ذکر بد نیست ولی تعدادش رو اضافه کردن برخلاف روش رسول الله چیه؟ بدعته خب اگر بدعت شخص مرتکب شد چی میشه روز قیامت؟ محروم از حوض رسول الله صلی الله علیه و اون لحظهی که ماها انسانها از قبل بیرون میایم لبان و عریان دنبال حوز و پناهگاهی میگردیم میریم نظر رسول الله کنار حوز جبرئیل میگه یا رسول الله اینها را که میبینی دارن ترد میشن رسول الله صلی الله علیه و به جبرئیل میگه میگه چرا اینا رو داری ترد میکنی بعد میگه ما تدری ما احدث هؤلاء من بعد اوکه كما ورد في الحديث چنانچه در دار حدیث و من به معناش من دارم میگم تو نمیدونی اینهایی که الان دارن رانده میشن فرشتگان دارن جداشون میکنن از حضور رسول الله صلی الله علیه و تو نمیدونی ای محمد اینها بعد از تو چه بد هایی عبردند امه محمد صلی الله میگه میگه من اونجا دارن دارم به فرشتگان میگم اینا امت منن از امت منن وسیحابی وسیحابی در روایت اون اصحابی اصحابی منظور از امت منه ما تنها با لفظ تصغیر اومده بیشتر روایت ها اومده اسیحابی با تصغیر عصبنی اومده اصحاب گفت اسیحابی یعنی اینا پیروان منن اینا امت منن بعد بگه نه تو نمیدونی که اینها بعد از تو چه بدعت هایی رو آوردن بدعت سبب محرومیت از وارد شدن بس این اهمیت اکتفا به راه و روش رسول اساس اساسا چطور گفتن ما میگیم پنج گنج و گنجل عرش رو نمیدونم این وردها و اذکارهای مندر آوردی اگر به نیت سنت بخونی شاید تو جز کسانی باشی که چی از حوض رسول الله صلی الله علیه و محروم بشی چرا چون این حدیث رو داریم که این اشخاص با این بدعتها اهل میگه مو... رسول خودش میگه میگه امت من ای اینا جاشون هرچک که اهل عبادت و اطاعت بودن ولی اینها جاشون تو حوض تو نیست چون راه روششون راه روش تو نبود پس مهمه که ما راه و را روشمون مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه شنیدم رسول الله این اذکار را میگه میگه هیچ وقت راهش نمیکنه و در اون روایت میگه چی؟ احب ان استنه بسنت به بسنته دوست دارم که به سنتش عمل بکنم ما به سنتش باید عمل بکنیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلام ابوک لک بذنب بس اقرار به گناه خیلی مهمه اقرار به کوتاهی تقصیر خیلی مهمه اقرادش فاغفر لي فانه لا یغفر الذنوب إلا ان هیچ کسی جستوب را نیبخشه و در پاداش اومده قال ومن قالها من النهار ومن قالها من النهار موقنا بها فماته کسی با یقین این ذکره بگوید و بمیرد صبقه بگوید روز در روز بگوید و بمیرد در اون روز فوت بشه فمات من يومه قبل ان يمسي قبل از اینکه شامگاه بشه فهو من اهل الجنه این بهشتیه این شفرد بهشتیه قال ومن قالها من و وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه کسی شامگاه بگه تا قبل صبح اگر فوت بکنه بهشتیه نا بکنید در روایت در حدیث دلی رسول الله صلی الله علیه و علیه میفرمایند اذا حب, اذا حب الله عبدا بوين لابصيرو میشه اگر الله بنده ای را دوست داشته باشه به او توفیق میده عملی که با اون دنیا را خاتمه بده توفیق یعنی با عبادت از دنیا بره توفیقا الله توفیق میده به اون بنده ای که اهل عبادته رسول الله صلی الله علیه و سلم این ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه سبعین خریفه ثم يختم بعمل اهل النار فیدخل النار شخصی افطور سوال عمل بهشتیان انجام میده با عمل جهنمی بعد از افتاد سال با عمل جهنمی از دنیا میره و جهنمی میشه و برخلاف این شخصی افتاد سال عمل جهنمیان انجام میده سپس توبه میکنه با توفیق به عمل صالحی خاتمه میا به زندگیش میمیره و وارد بهش میشه چرا اون شخص اولی افتاد سال عبادت میکنه سپس خاتمهش با گناه میشه چون این شخص تظاهر به اسلام و عبادت داشت عبادتش از ته قلب نبود ترس از الله نداشت صد 70 سال اومده عبادت کرده از الله نترسیده مرتکب گناه شده الله نخواسته که اون با طاعت از دنیا بره با اون گناه بره از این حال باید بترسی که خاتمه‌مون خاتم بد باشه نباید شیطان و نفس اماره بهمون بگه حالا دنیا دوره بذارم س... الان موسیقی گوش بده بزار الان خوش باش عروسیه حالا یک شب عروسی دخترته یک شب عروسی خودته بزار شاد باش شیطان فریبت نده شاید اون لحظه خاتمه دنیات باشه یک بارم خودت اجازه معصیت و گناه نشد داده شاید اون لحظه فراقت از دنیا باشه که اگر با گناه و معصیت از دنیا رفتی جهنمی بشی من یک مسئله اشاره کردم اینجا جلسه گذشته که بازم دوباره اشاره بهش میکنم چون مهمه من اشاره بهش میکنم چون اینجا بحث سوره فاتحه شد وانا على وعدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت شرع سوره فاتحه ايش بده اياك نعبده واياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقا نو... نو... نو... نو... نو... نو... نو... نو... إن جاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين شو اوصاف ايهنها داشتن كي خشم الله شدن و چه افصافی داشتن که اینا گمراه شدن از راه به بیراه رفتن و از صراط مستقیم خارج شدن جهنمی شدن اینها خشم خدا برانها شد اینها از راه به در رفتن صراط مستقیم که رفتی بیرون که جاد جهنمه مغضوب علیهم از جمله آنان ابلیس از جمله آنان یهود خشم الله بر یهود باد چرا؟ خشم الله بر یهود باد چرا؟ یعرفونهو کما طور که فرزندانشونو رو ولی ایمان آوردن؟ نه آوردن. ما میدونیم رسول الله بر حقه ما میدونیم نماز حقه ولی به اون نمازمون اهمیت نمیدیم نمازمون ازمون فوت میشه میدونیم علم حقه میدونیم از کار حقه ولی نمیخونیم میدونیم ولی طرفش نمیری کسی کسی بدونه کسی بدونه و بعد خودشو محروم بکنه از اون فضیلت از اون امری که الله ازش خواسته مستحق خش و غذب الهیه کسی که بدونه الله توفیق هدایت و توفیق فهم و درک بشه داده که آقا این نمازه و بعد این در این نماز کسالت بخرج بده بی اهمیت باشه نسبت به با این نمازش این شخص مستحق عقوبته چرا چون میدونست این نماز حقه و بین فرد مؤمن و فرد کافر نمازه بین الرجل و بین الكفر ترک و صلاح فمن ترکه فقط کفر اس بین اسلام و کفر نمازه بوی وجود شب تا دیر وقت دو سه شب بیدار و صبح نماز ازش فوت میشه خشم خدا بر این اشخاص بر این اشخاص هست به خاطر عدم پایبندی به علم عدم پایبندی به علم مغضوب علیهم یه طرف ضالین طرف دیگر کسانی که دنبال حق نرفتن اینها حق را میدونستن اینها حق را عمل نکردن اینها هم دنبال حق نرفتن که بهش عمل بکنن ما سه دسته داریم دسته دا اول حق میدونن عمل میکنن صراط المستقیم دسته دوم حق میدونن عمل نمیکنن مغضوب علیهم دسته سوم نه نم نه عمل میکنن نمیدونن نمیرن دنبالش که بدونن حلقات علم و حلقات درس و شریعت شرکت نمیکنن کلام الله را نمیخوان بفهمن افلا یتدبرون القرآن الله بس به کی میگه اینا یه رحماس للمنافقين افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفله. میگه قلبتون قف شده به منافقی میگه که نمیتونید قرآن رو بفهمید درک بکنید یعنی ای مؤمن اگر تو هم قرآن رو نفهمی وجه مشترک تو با منافق یکیه با هم مشترکی در این گناه در این وسف قلبتو هم مثل منافق قف شده اگر در قرآن تدبر نکردی اگر نفهمیدی اگر دنبال این علم نرفتی تو گمراهی ضاللی بس مسئله خیلی مهمه تقصیر و کوتاهی در فهم قرآن ما مسئولیم در مقابل و انا علی عهدك و وعدك این عهد کلام الله الله نازل کرده بر رسول الله که کلامش سوخرش و گوش بدیم بخاطر همین مجلسی گذشه از تقصیرات خودمون چی یاد گرفتیم سر نماز میگیم الله اکبر کلام الله داریم میشنیم الحمدلله رب العالمی داریم حساب کتاب دنیا رو میکنیم توجه به کلام الله نا... الله داره ما ما صحبت میکنه سخن الله بر ما تلاوت میشه نه ما اوز مج... برای خودم بگیم ما معناشو نمیدونیم چرا معناشو نمیدونیم مگر تو منافقی؟ منافقانن که نمیرن دنبال فهم قرآن ولی مؤمن از وصفشیه برخلاف منافقین دنبال فهم قرآن میخواد به الله چی بهش گفته پس این مسئله مهمه سدرسه را فراموش نکنید کی بودن دسته اول؟ کسانی که دنبال دینن که بدانن و عمل کنند دسته دوم میدانن و عمل نمی کنند دسته سوم نمیدانن و عمل نمی و مغضوب علیهم و ضالی خب یازدهم ذکر حدیث ام سلمه داریم عن ام سلمته رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا من إن ذكروا إن جا وردا هرتشان در حديث إن جا موسى مي جيه رسول بعد الزمان الصوب مي قفتن. شون علماء إنو در أزكار الصوب جا من إن جا وردا. أسبار إيه كي إن ذكر بعد الزمان الصوب قفته بشه. اللهم إني أسألك علما نافع علمي كمنفع كم عدش تبشه. فر منفع الترين علم علم بلا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فعلم أنه لا إلهها الله اگر این اصلاح بشه الله را بشناسیم نه قرونایی هست نه مورونایی هست نه عقوبتی هست نه عذابی هست درسته یا نه اگر الله را بشناسیم الله قومی که او را میشناسند حقش را به جا عذابش رو میده والله هیچ وقت الله عذاب نمیده به بندگانش اگر عذابی میاد به خاطر چیه به خاطر گناه و تقصیرش به خاطر که به خودشون بیان به خاطر که بیدار بشن هوشیار بشن بس این علمه شأنش خیلی بالاست با علم عذاب از ما دفت میشه با علم عقوبت از ما دفت میشه و رزقا طیبا و عمل متقبلا رزق طیب رزق پاک رزق پاکی که این گوشت بر جهنم الله حرام بشه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین گوشتی که با حرام تغذیه بشه النار اوله به گوشت انسان تن انسان با یک ذره حرامی با یک دروغی بر سر معامله ای با یک دزدی با یک اختلاسی اون گوشت انسان تغذیه بشه از نارو و به این رزقه چیه رزق ناپاکه الله حموسوب از الله الله بار الها رزقم را پاک قرار بده وقتی که این رزق من دارم معنیش میگم که تو بدونی معنیش یا گفتم الله سجابت نمیکنه دعا اگر معنیش رو نفهمی وعملا متقبل و فاردگار توفیق عملی بده که مورد قبول درگاهت باشه عمل هر کسی عمل انجام میده ولی عملی مورد قبول درگاه الهیه که الله از من خواسته اونطور عمل بکنیم نماز را از ما خواسته و این نماز رو روشش به ما یاد داده اگر ما بیایم این نماز که از ما خواسته رو به قبل این ور انجام بدیم اومدیم پشت به قبل این ور خوندیم نمازه همون نمازه فقط قبلش رو عوض کردیم قبوله قبول نیست پس این عمل ناقص داره نواقضی داره چیزها اگر به جای اول اینکه صورتت بشوری پاتو بشوری یا دستت بشوری بعد صورتتو بشوری وجود قابل قبول نیست اگر وجود باطل شد نمازت مورد قبوله نه پس توفیق عمل را از الله بخواهیم که عملی را به همین توفیق بده که اون عمل صالح و مورد قبول درگاهش باشد سبحانه کلام و حمدیک و صلی الله محمدین و علیه محمد